دوستان به دانشکده کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. در ضمن مطالعه کلام وحی شده از جانب خدا به سه کتاب آخره عهد قدیم رسیدیم. پس زن و دلتون رو آماده کنین تا در حالی که معلممون کتاب‌های اذرا و نحمیا رو همزمان برای ما باز می‌کنه، به دقت به اون گوش کنین. این شما و این معلم ما. به بخش دیگری از بررسی کلام قدوس خداوند که برای من و شما فرستاده خوش آمدید. ضمن مطالعه کلام خدا که بررسی کل کتاب مقدس هست، به سه کتاب آخر تاریخی عهد قدیم رسیدیم. پس کتاب مقدساتون رو بردارید و کتاب ازرا رو باز کنید و در ضمن بررسی کتاب های ازرا و نهمی با ما همراه باشید. قدت قبل گفتم که دوازده کتاب تاریخی عهد قدیم میتونن در سه دسته طبقه بندی بشند دسته اول کتاب های تاریخی تمثیلی بودند که عبارتند از کتاب های یوشه، داوران و روت. این کتاب ها به غیر از اینکه تاریخی هستند، حقایقی رو به صورت تمثیل به ما عرضه می‌کنند. بعد شش کتاب تاریخی رو داشتیم که بهشون کتاب ها و نوشتجات تاریخی پادشاهی می گفتیم. حالا ما مطالعه و بررسی این شش کتاب رو به پایان بردیم و به سه کتاب آخر تاریخی رسیدیم. این سه کتاب تحت عنوان کتاب تاریخی بعد از اسارت طبقه بندی شدن. اسارت بابل یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی در تاریخ قوم یهود است. وقتی که به کتاب های می‌رسیم، میرسیم و سعی میکنیم که انبیا رو در این متنهای تاریخی که در کتاب تاریخی شرط داده شدهاند بررسی کنیم، قادر خواهید بود جایگاه اونها را از نظر موقعیت تاریخی مشخص کنیم. وقتی که این انبیا رو در جایگاه تاریخیشون قرار بدیم، متوجه خواهیم شد که انبیا رو میشه به دو دسته طبقه بندی کرد. انبیای قبل از اسارت و انبیای بعد از اسارت هر قدر بیشتر با تاریخ قوم یهود آشنا بشید تاریخ اسارت بابل نقطه عطف مهمی برای شما خواهد شد سه کتاب تاریخی بعد از اسارت عبارتند از ازرا نهمیا و استر کتاب‌های ازرا و نهمیا به دو کتاب متشابه عهد قدیم معروف هستند چونکه مقدار زیادی از محتوای این دو کتاب مشابه هم هستند. هر دو کتاب یک واقعه تاریخی را در تاریخ قوم یهود بیان می کنن. و اون واقعه بازگشت از اسرارت بابل هست. وقتی که تاریخ قوم یهود را مرور می کردیم، گفتم که هفت رویداد در تاریخ قوم یهود هست که باید بدونید. یکی از اون رویدادهای مهم تاریخی بازگشت از اسرارت بابل هست. وقتی که ارامیان پادشاهی شمال را اسارت بردند، ده تایفه به کلی منهدم شدند. و دیگر هرگز از آنان سخنی به میان نیومد اما پادشاهی جنوب از اسارت بابل بازگشتند پادشاهی جنوب یا یهودا به مدت 70 سال در بابل در اسارت بودند بعد پارسیان بر بابل غلبه کردند و به محض اینکه کوروش کبیر امپراتور فارس شد او قانونی وضع کرد که هر یهودی که در پارس اسیر بود آزاد بود که به کشورش برگرده و معبد و شهر و کشورش رو بازسازی کند بسیاری به برکت کوروش کبیر بازگشتند در واقع کوروش کبیر منابع مالی کارهای مرمت و بازسازی را هم تأمین کرد وقتی که به مسئله بازگشت از اسارت بابل میرسیم لازمه که بعضی زمینه های تاریخی رو بدونید. وقتی که کتاب‌های اذران همیا و استر رو میخونید لازمه که بدونید بازگشت از اسارت بابل حداقل در سه مرحله و سه برهه از زمان انجام شده البته من قصد ندارم شما رو با تاریخ خواسته کنم این دوره یک دوره مطالعه دانشگاهی نیست این یک مطالعه کاروردیه من همیشه میخوام که بر پذیرفتن کاربردهای عملی تاکید کنم اما لازمه که بعضی سوابق تاریخی را هم بدونیم تا اینکه سردرگم نشیم اولین بازگشت از اسارت بابل بلافاصله بعد از زمانی بود که کوروش کبیر این امکان رو فراهم کرد این بازگشت تحت رهبری فرمانداری به نام زرو بابل و کاهنی به نام یشو در حدود 537 قبل از میلاد بود بازگشت اول به منظور بازسازی سریع معبد انجام شد به محض اینکه کار بازسازی معبد شروع شد مخالفت ها و اذیت و آزارها ها بازگشت کنندگان رو پریشان کرد اونها کار بازسازی رو متوقف کردند تا اینکه حجی و زکریای نبی وارد صحنه شدند در طی خدمت این دو نبی اکثر کارهای بازسازی معبد به اتمام رسید و این مقارن با سال 516 قبل از میلاد یعنی 21 سال پس از شروع به کار بود. حالا برای اینکه زمینه تاریخیش رو بدونید، کار تکمیل بازسازی معبد 37 سال بعد از آن بود که استر ملکه فارس شد، یعنی سال 479 قبل از میلاد. در سال 458 قبل از میلاد، از را دومین گروه از اسرای بابل رو برای بازگشت رهبری کرد. خدا اولین بازگشت رو برای بازسازی معبد ترتیب داد و زروبابل و یشوع نبی از اسارت بازگشتند و در طی 21 سال معبد رو بازسازی کردند. بعدها خدا تصمیم گرفت که خدمت فعالی در اون معبد ایجاد کنه. پس از را که معلم بزرگ کتاب مقدس بود دومین گروه رو رهبری کرد. این 79 سال بعد از بازگشت اول بود. بازگشت دوم تحت رهبری ازرا 58 سال بعد از آن بود که معبد بازسازی و مرمت شد. سیزده سال بعد از بازگشت دوم، نحمیا سومین بازگشت رو رهبری کرد. منظور از بازگشت نحمیا این بود که حسارهای اطراف شهر اورشلیم بازسازی بشند. بازگشت نحمیا 92 سال بعد از اولین بازگشت بود و 71 سال بعد از پایان کار مرمت و بازسازی معبد. حجی و زکریا بازسازی و مرمت معبد رو به عهده داشتند. ملاکی نبی کسی بود که به همراه نهمیا کار بازسازی حصار شلیم رو به عهده گرفت. دو کتاب عزرا و نهمیا باید با همدیگر مطالعه بشن چون که این دو کتاب تشابهات زیادی دارند. لازمه که این تشابهات رو ملاحظه کنید. اولا به نظر میرسه که به علاوه ی کتاب تواریخ این دو کتاب نیز توسط یک نفر یعنی از را نوشته شده. محققین از این رو به این نتیجه رسیدند چون که در زبان عبری هر دو کتاب بسیار شبیه هستند کتاب های از را و نههمیا همینطور به لحاظ اینکه هر دو به یک واقعی تاریخی قوم یهود پرداختن نیز مشابهند این کتاب از این لحاظ نیز مشابهند چون که موضوع اصلی هر دو کتاب مربوط به کار خدا هست. در هر دو کتاب کار خدا ساختن هست در کتاب های و نهمیا ها تاکید بر الگوها و اصولی هست که باید از اونها پیروی بشه تا انسان بتونه در کار خدا صحیم بشه اگر شما علاقمند به کار خدا هستید و می‌خواهید که در کار خدا مشغول باشید لازمه که به کتاب‌های ازرا و نحمیا مراجعه کنید چون که در اونها اصولی رو خواهید دید که اگر قرار هست کار خدا توسط انسان پیش بره باید مراعات بشه در کتاب‌های ازرا و نحمیا این اصول در ساختمان معبد و حسارهای شهر به کار گرفته شده امروزه خدا کلیسای خودش رو در دنیایی که ما در اون زندگی می‌کنیم بنا می‌کنه وقتی که قرار هست کار خدا توسط انسان پیش بره، خواه خدا یک معبد بسازه یا یک سازمان خدمتی فعال یا حصارهای شهر یا یک کلیسا، همین اصول باید مراعات بشه. یک تشابه دیگه بین ازرا و نهمیا هست و اون اینه که هر دو کتاب به ما الگوهای بزرگی از رهبری میدن. امروز مانند ایام حکومت داوران یک قحطی رهبری وجود داره. قوم خدا امروز به الگوهای رهبری نیاز دارن. که در کتاب های ازرا و نهمیا عرضه شده این دو رهبر ازرا و نهمیا در شیوه رهبریشون و در عطایاشون بسیار متفاوت بودند. در دوره خودشون اونها رهبران بزرگی بودند. ازرا کاتب بود به این معنی که ازرا معلم کلام خدا بود خدمت ازحاسی ازرا شبانی بود نهمیا یک سازنده عملی بود نهمیا مثل یک شخص آمی بود ازرا یک کاهن و نهمیا یک روستایی بود در باب ششم کتاب اعمال رسولان میخونیم که رسولان تصمیم میگیرند که کار تقسیم کردن قضا رو به عهده نگیرند. اونها نباید کلام خدا رو ترک می‌کردند و به خدمت در صفرها مشغول می‌شدند. اونها قوم خدا رو جمع کردند و گفتند از بین خودتون مردانی انتخاب کنید که روحانی و حکیم باشند. روح خدا رو داشته باشند تا اونها رو به این خدمت منصوب کنین. اما ما خودمون مشغول دعا و پرستش و خدمت کلام خدا خواهیم بود. همه عطایای روحانی روحانی هستند اما بعضی از عطایا جزء خدمت شبانی و بعضی ها خدمات عملی هستند. این دو رهبر بزرگ از را و نههمیا این تفاوت رو به تصویر میکشند. از راه شخصی رو به تصویر میکشه که عطیه شبانی هست، نهم هم به اندازه از راه روانی هست اما نحمیا خدمتی عملی داره. او یک بنا بود. نهمیا نمونه بزرگی از افرادی بود که میگوین بگذار بشود این دو رهبر بسیار متفاوت بودند اما در عین تفاوتشون هر دوی اونها نمونه های بزرگی از رهبری بودند در ادامه اشاره به تشابهات این دو کتاب باید بگیم که هر دو کتاب یک بیداری عظیم را ثبت کردند و زمینه هر دو خیلی مشابه هستند در بابهای اول شما استخوانبندی کتاب ها رو میبینید جایی که کار خدا به اتمام رسیده در همونجا در هر دو کتاب بعد از اینکه کار خدا انجام شده قوم خدا توبه میکنند در باب نهم کتاب ازرا و در باب نهم کتاب نحمیا هر دو رهبر به خاطر رفتار قوم خدا غمگین هستند دعای اعتراف اونها پشیمانی اونها و توبه اونها عامل بزرگی در بوجود آمدن بیداری عظیمی در بین قوم خدا میشه در ادامه باز هم به یک تشابه دیگه اشاره میکنم. هر دو کتاب در مورد دادن اجازه از سوی امپراتور پرست و همدلی و همیاری او در بازسازی و انجام کار خدا هست. در اولین کتاب تاریخی عهد قدیم خدا میخواست که پادشاه بنی اسرائیل باشه. اما اونها میخواستند که مانند قوم دیگر انسانی بر اونها حکومت کنه و خدا گفت اگر پادشاهان شما از من اطاعت کنند من به واسطه اونها کار خواهم کرد. اما خدا پادشاهی بیدا نکرد که از او اطاعت کنه. اونها خدا را به عنوان پادشاهشون رد کردن وقتی ما به کتابهای ازراو و نهمیا می رسیم خدا از پادشاهان بودپرست استفاده میکنه کوروش کبیر امپراتور بودپرست فارس بود با این حال خدا توسط او کار کرد خدا در این دو کتاب توسط پادشاهان بودپرست کار میکنه هر دو کتاب در کشور دور خارجی امپراتوری ایران شروع میشه و هر دو کتاب در اورشلیم به پایان میرسه اورشلیم جایی است که داستان حقیقی هر دو کتاب در اونجا اتفاق میفته. مثل کتابهای پادشاهان و تواریخ، هر دو کتاب دو جنبه قوم رو نشون میدن. از را به ما دیدگاه روحانی و نهمیا به ما دیدگاه انسانی میده. اگرچه کتابهای های تواریخ و پادشاهان که مربوط به یک دور از تاریخ هستند همه با شکست، نابودی و اصارت خاتمه پیدا میکنند، اما دو کتاب از را و پایان خوشی دارند در پایان کتاب های از را و همه چی برای قوم خدا خوب به نظر میرسه. بخش زیبایی در ارمیا هیجده هست. به ارمیا گفته میشه که برخیز و به خانه کوزگر فرو دای که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانید. پس ارمیا به خانه کوزگر رفت ارمیا معزه عملی و نمادینی کرد. ارمیا یک چنین نبی بود او چنین واعظی بود. ارمیا دید که کوزگر زرفی گلی و اون ظرف در دست کوزگر خراب میشه. کوزگر اون رو به کناری میندازه و خرد میکنه و دوباره ظرفی دیگه میسازه که به نظرش خوب میاد. ارمیا از کارگاه کوزگری با معزهی بزرگ بیرون آمد. معزه ارمیا مانند این معزه عیسی بود که گفت شما باید از نو متولد بشید. برای خدا این امکان هست که از شما ظرفی تازه بسازه. کاربرد عملی بیداری که در باب نهم کتاب‌های عزرا و نهمیا شرح داده شده همان چیز هست. خدا میتونه قومش رو تازه کنه و به عبارتی دیگه ظرفی تازه بسازه میخوام ازتون بپرسم آیا خدا زندگی شما رو به ظرف جدیدی تبدیل کرده این موعظه شگفتانگیز ارمیا که از جانب روح القدس به او وح شده بود به من و شما این خبر خوش رو میده که خدای قادر مطلق خیلی مایل هست که همون کار رو برای من و شما هم انجام بده. خدای کوزگر ظروف معیوب رو به کناری میندازه و اون رو دوباره به گل تبدیل می‌کنه و از اون ظرفی تازه می‌سازه. وقتی که شما اون تشبیه رو در زندگی خودتون بپذیرید اون می تونه مربوط به بسیاری از تجربیات دردناک زندگی شما باشه. پروسه بازسازی دردناک است اما نتیجهش به طرز باور نکردنی زیباست. من بره های روحانی در زندگیم داشتم که در اون خدا انواع معجزات رو در زندگی من ظاهر کرده. من یکی از اون تجربیات رو بی ربط به موعظه تمثیلی ارمییا نمیدونم. آیا حصارهای روحانی شما نیاز به مرمت دارن؟ آیا خدا شما رو میشکنه تا از شما ظرفی تازه بسازه؟ آیا امکان داره که شما همین الان از چنین تجربیاتی رو بور می کنی؟ من اینو تجربه کردم که ظرف جدید تمام اون دردهای تجربه دوره می میارزه بنابراین شما رو تشویق میکنم که در این دوره با خدا همکاری کنید و از نتیجه مثبت بیپایان پایان کار خدا در زندگیتون لذت ببرید تا از شما ظرفی تازه بسازد این یکی از های عملی در کتابهای اذرا و ها هست حالا میخوام بر کتاب ازرا تمرکز کنیم اگرچه کتابهای ازرا و ها خیلی شبیه به هم هستند اونها مشخصه خاص خودشون رو هم دارن میخوام که اونها رو یکی یکی بررسی کنیم ضمن این که می بر کتاب را تمرکز کنیم مایلم که بر شخص خود را نیز تمرکز کنیم در این بررسی ما بخش زیادی از تاریخ یهود رو از نظر گذروندیم در تاریخ قوم یهود ما با چند رهبر حقیقتاً بزرگ آشنا شدیم با مردان خوب زیادی آشنا شدیم اما فقط چند از اونها حقیقتاً مردان بزرگی بودند موسی قهرمان اونها هست. به نظر من موسی برتر از همه مردان بزرگ در عهد قدیم هست. ابراهیم پدر بنی اسرائیل شد. اما بعد از اینکه ابراهیم پدر قوم اسرائیل شد، موسی رهبر بزرگ اونها شد. داوود هم رهبر بزرگی بود. ما اینو از اونجا میدونیم که نیمی از اول سموئیل و دوم سموئیل به این اختصاص یافته که زندگی نامه داوود رو به ما بگه. سموئیل هم رهبر بزرگی بود. سامویل بنی اسرائیل رو از دوران تاریکی خارج کرد و خلع رهبری اونها رو پر کرد از را, را باید در رده مردان بزرگی مانند موساسممویل و داوود قرار داد. از را سهم عظیمی در پیشرفت کار خدا داشت یادتون هست وقتی کتاب تاریخ رو میخوندیم، گفتیم که از را فامیل هلقیا هست همون مردی که کتاب مقدس رو در هنگام بازسازی معبد پیدا کرد آن هم زمانی که مردم خولا کتاب مقدس رو فراموش کرده بودن بدون شک، ازرا به مقدار زیادی تحت تاثیر هلقیا بوده. خدمت ازرا این بود که بیداری به وجود بیاره و مردم را به کتاب مقدس علاقمند کنه. چون ازرا در دوره اسارت زندگی می نمیتونست مثل یک کاهن عمل کنه. در قسمت هایی از دنیای ما، ما خادم نداریم. مسیحیت غیر قانونی اعلام شده و اکیدن ممنوع شده. ازرا در چنین فرهنگی زندگی میکرد. ازرا نمیتونست به عنوان یک کاهن معمولی قوم یهود کار کنه به جای اینکه مایوس بشه و بگه خب خدا مرده ما در ازرا باب هفت ده میخونیم که میگه ازرا دل خود را به طلب نمودن شریعت خداوند و به عمل آوردن آن و به تعلیم دادن فرایز و احکام به اسرائیل مهیا ساخته بود اون آیه نقطه عطف زندگی ازرا بود به زندگی های خودمون جوری فکر کنیم که زندگی ما به سه بخش مجزا تقسیم شده. یک سوم عمرمون رو با والدینمون میگذرونیم و پرورش پیدا می‌کنیم، یک سوم دیگر زندگیمون رو با همسرانمون برای بزرگ کردن فرزندان سپری می‌کنیم و بعد وقتی فرزندان رفتن یک سوم بعدی زندگی ما شروع میشه که ما با همسرمون سپری می‌کنیم. در حالی که آشیانه خالی شده. ما میتونیم زندگیمون رو به اون ترتیب تقسیم بندی کنیم. به نظر میرسه از راه زندگیش رو به سه دوره تقسیم کرده. یک سوم اول زندگی ازرا صرف آماده سازی شده. ازرا تمام قلبش رو برای یاد گرفتن کلام خدا داده. ازرا میگه که او در جستجوی کلام خدا بوده. با جدیت به دنبال تحصیل کلام خدا بوده. اون دوره از زندگیش رو به عنوان دوره آمادگی سپری کرده. در دومین بخش از زندگی او خودش رو وقف تعلیم دادن کلام خدا و انجام کارهایی کرده که کلام خدا میگه. در سومین بخش از زندگیش، او خودش رو وقف تعلیم دادن کلام خدا کرده. او میخواست که سومین بخش از زندگی خودش رو صرف آماده کردن افراد جوان و ناپخته بکنه. این بهترین روش برای تقسیموندی زندگیتون هست. من فکر میکنم مشکل تعالیم امروزی ما اینه که ما کسانی رو داریم که آماده میشن و تعلیم میدن. اما اونها فقط میتونن تعالیم تئوریک بدن. اونها نمیتونن به منابع تجربیاتشون مراجعه کنن اونها تحصیل میکنند، آماده میشن و مقادیر زیادی اطلاعات در ذهن خودشون انباشته میکنن و یک سوم اول زندگیشون رو صرف این کار میکنند بعد بقیه عمرشون رو صرف تعلیم میکنند. اما اون دوره میانی پذیرش و به کارگیری چیزی رو که آموختند و تعلیم میدن ندارن بهترین معلم کسیه که دومین بخش از زندگی خودش رو صرف به کارگیری های بخش اول زندگیش بکند بعد از تجربه هست که قسمت سوم زندگی او میتونه برای تعلیم سودمند باشه یک بار رئیس دانشکده الهیات با من درباره تعلیم کتاب مقدس در دانشگاهش صحبت کرد در اون دوره من شبان بسیار پرمشغله‌ای در کلیسای بزرگ بودم او گفت که میخوام بیای و در دانشکده من کلام خدا رو تعلیم بدی اگر چه دلم نمیخواد مانع کار یک شبان پرمشغله بشم اما نگرانی من اینه که اگه ما افرادی مثل تو رو نداشته باشیم که این چیزها رو میدونه که بیاد و تعلیم بده ما فقط کسانی رو داریم که میاند دو تعلیم تئوری میدن کسانی که کلام رو تجربه نکردند کسانی که هرگز یک شبان نبودند اگر خودتون شبانی نکرده باشید چطور میتونید به دیگران تعلیم بدید که چطور شبانی بکنن این نه تنها در دانشکده کتاب مقدس و شبانی صدق میکنه بلکه در هر شغل دیگه ای هم صادق میکنه. در ازرا با به 7 آیه 10 میخونیم که زندگی ازرا به سه بخش تقسیم شده اولیش دوره آمادگی بود دومیش دو تمرین کردن و بعد آموزش ازرا در سومین بخش از زندگیش تبدیل به بزرگترین معلم کلام خدا شد چون که دو بخش اول زندگیش رو وقف آمادگی و تمرین کرده بود وقتی که سحمه عزرا رو در کار خدا ملاحظه میکنید میفهمید می‌فهمید که چرا عزرا در طبقه بندی با داوود و و موسی در یک طبقه قرار میگیره همونطور که در جلسه قبل اشاره کردیم تصور میشه که از ازرا نویسنده کتابهای تواریخ ازرا و نحمیا هست از راه همینطور طولانی ترین باب رو در کتاب مقدس نوشته مزمور 119 رو که 176 آیه داره اونطوری که خیلی‌ها فکر می‌کنن داوود این مزمور رو ننوشته اون باب در مزامیر خیلی بلندتر از کتابهای کوتاه در کتاب مقدس هست در اون 176 آیه به جز دو آیه، همه آیات به ما نشون میدن که این مرد چقدر در فکر کتاب مقدس بوده. در اون شعر زیبایی در زبان اصلی هم هست. بر طبق روایات، مردم بر این باورند که در مدتی که از را در اسارت بوده و نمیتونست به عنوان کاهن کار کنه، بنیان چیزی رو نهاده که امروز به اون کنیسه میگیم. بسیاری از غیریهودیان تفاوت بین معبد و کنیسه رو نمیدونند. معبد اورشلیم یک مرکز پرستش بود. وقتی معبد سلیمان ساخته شد، معبد از همان نمادها و الگوهای پرستشی استفاده کرد که در خیمه پرستش وجود داشت. اما کنیسه یک مرکز پرستش نیست. کنیسه یهودی چیزی معادل مدارس یک شنبه در کلیسه های امروزی هست. بسیاری از محققان بر این باورند که مدارس یک شنبه یا مدارس کلیسه امروزی برپایی کنیسه ای ساخته شده که ازرا را بنانه هاد. وقتی که ارزش مدارس یک شمبه رو در سراسر دنیا در نظر بگیرید، بسیاری از محققان میگند که شما میتونید همه اون رو به این مرد از را نسبت بدید. بدین معنی که ازرا سهم بزرگ و فعالانه ای در تعلیم کلام خدا داشته. به خاطر از را میلیون ها کودک در کنیسه ها و مدارس یک شنبه کلام خدا رو یاد گرفته‌اند. محققین بر این باورند که ازرا نقش عمده‌ای در ترتیب و ساماندهی عهد قدیم به شکل امروزی داشته. کی بود که کتابهای عهد قدیم رو جمعآوری کرد و اونها رو تحت عناوین طبقه بندی کرد؟ مثل کتابهای شریعت، کتابهای تاریخ، کتاب‌های شعر یا انبیای بزرگ یا کوچک. همه محققین بر این نظرند که این میتونه به ازرا نسبت داده بشه. به علاوه بر سهم او در این خدمات، این ازرا بود که دومین بازگشت از اسارت قوم رو رهبری کرد. از راه بود که خدمت موثر تعلیم را در معبد که قبل از بازگشت تعمیر شده بود بنا نهاد خدا به کسانی مانند زروبابل فرماندار و یشوع کاهن معمولیت داد که معبد رو بازسازی کنند. خدا به ازرا را معمولیت داد که دومین بازگشت اصرار رو رهبری کنه و خدمت فعال و روحانی تعلیم رو در معبد به عهده بگیره. از را گروهی از کاهنین و کاتبین رو گرد آورد که به همراه او بعد از بازگشت کلام خدا را آموزش دادند. کتاب از را به ما پیغامی میده که مربوط به کار خدا هست. اگر شما در صدد انجام کار خدا هستید به زمینه کتاب از را علاقمند خواهید شد. اولین اصل الگو برای کار خدا این هست. وقتی که کار خدا انجام میشه، خدا اولین شخصی خواهد بود که اون کار رو پیش میبره. پولس رسول در رومیان 11.36 میگه، زیرا که همه چیز از او، و به واسطه او و برقای اوست او را تا آباد جلال باد آمین رومیان یازده سی و یکی از آیات مورد علاقه من در کتاب مقدس است. در این آیه پولس میگه خدا من به همه چیز هاست خدا قدرت پشت همه چیز هاست و منظور از همه این کارها جلال خدا است. وقتی که من بزرگتر می شدم و فکر می کردم که زندگیم رو چگونه برنامه ریزی کنم یعنی زمانم انرژی و قوت هم رو به این نتیجه رسیدم که دلم نمیخواد در هیچ کاری بشم مگر اینکه بتونم بگم خدا منشأ این کار هست. خدا قوت پشت این کار هست و منظور از اون کار جلال خدا هست. فکر میکنم این روشی بود که از را زندگیش رو اولویت بندی کرد. وقتی از را فهمید که خدا از او میخواد دومین بازگشت و سرا از بابل رو رهبری کنه و خدا میخواد که خدمت موثری در معبد بازسازی شده داشته باشه او منتظر شد تا مطمئن بشه، خدا قدرت محرکه این بازگشت هست. این را از اولین آیات کتاب از را متوجه میشیم. دومین اصل و الگو برای کار خدا که ما از کتاب از را یاد میگیریم اینه. وقتی که خدا نیروی محرکه کاری هست که میخواد از طریق انسان انجام بشه، رهنمود روشنی خواهد داد. برای اون سازمانی که کار خدا را انجام خواهد داد، رهنمودی بسیار روشن میده. سومین اصل و الگویی که از راب ما درباره کار خدایات میده اینه خدایی که قدرت محرکه کاری هست و رهنمودی روشن میده و به کارش علاقمنده هر چیزی رو که برای پیش برد کار اون نیاز هست فراهم خواهد کرد این مهمترین اصل و الگو در رابطه با کار خدا هست این اصل و الگوی مهم بارها در کتاب مقدس عنوان شده در متا 6.33 در عهد جدید عیسی به شاگردانش گفت: نخوس در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید. آنگاه همه آنها نیز به شما عطا خواهد شد. منظور عیسی این بود که ما پادشاهی خدا را به همراه چیزی که خدا به ما نشون میده که درست است در اولویت قرار بدیم. بعد وقتی که فهمیدیم خدا میخواد ما انجام بدیم، وقتی که کاری که در نظر او درست است انجام میدیم، او هر چیزی رو که ما برای انجام اون کار نیاز داریم فراهم خواهد کرد. متا 633 یک آیه زندگی برای من هست و اون الگو و اصلی که این آیه به من نشون میده هرگز منو تنها نمیذاره. وقتی که خدا میخواد کاری انجام بده او میتونه هر چیزی رو که برای انجام کارش مورد نیاز هست فراهم بکنه. در کتاب از را شما میبینید که خدا اون اصل الگو رو در شرایطی ثابت میکنه که مردم در زمان سختی شدیدی بودند و میگفتند. خدا حالا هیچ کاری نمیتونه بکنه چون که ما مغلوب شده ایم ما در فارس اسیر هستیم خدا قلب امپراتور فارس کورش کبیر رو برانگیخت وقتی خدا کورش رو برانگیخت که اون فرمان رو صادر کنه نشون داد که او محرک اصلی پشت این بازگشته است و همزمان خدا قلب کورش رو چنان برانگیخت که خود کورش هر چیزی رو که برای انجام کار خدا ضروری بود فراهم کرد چهارمین اصل الگو برای کار خدا اینه وقتی که خدا میخواد کاری انجام بده، خدا به مقدار کم فراهم نمیکنه، بلکه خدا به فراوانی و به حد وفور فراتر از آن چیزی که ما خواستیم و یا حتی فکر کردیم که بخواهیم فراهم میکنه. این حقیقت در کتاب از رابط تصویر کشیده شده. اونهایی که بازگشتند فقط به اندازه انجام کارشون نداشتند. اونها بیش از حد نیازشون که معبد رو بازسازی کنند داشتند. پنجمین اصل و الگویی که درباره کار خدا در کتاب از را میبینید، این هست. وقتی که شما کار خدا را انجام میدید، در انتظار این استراتژی و حیله شیطان باشید. بزرگترین دشمن بهترین یک چیز خوب است. متن مربوط به این دسیسه در از رابا به سه آیات ده تا سیزده ثبت شده. و چون بنایان بنیاد هیکل خداوند را نهادند، کاهنان را با لباس خودشان، با کرناها، و لاویان و بنیاساف را با سنج ها قرار دادند تا خداوند را بر حسب رسم داوود پادشاه اسرائیل تسبیح بخوانند و بر یک دیگر می و خداوند را تسبیح و حمد می گفتند که اونی کوست زیرا که رحمت او بر اسرائیل تا ابد آباد است. و تمامی قوم به آواز بلند صدا زده خداوند را به سبب بنیاد نهادن خانه خداوند تسبیح می خاندن. بسیاری از کاهنان و لاویان و پیرانی که اولین خانه خدا رو دیده بودند اینی که بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد با آواز بلند گریستند و بسیاری با آواز شادمانی صداهای خود را بلند کردند. چنان که مردم نتوانستند در میان صدای آواز شادمانی و آواز گریستن قوم تشخیص نمایند، زیرا که خلق صدای بسیار بلند می چنان که آواز ایشان از دور شنیده می شد این تمثیل بسیار شیوایی از این حقیقت هست. بزرگترین دشمن بهترین ها چیزی خوب است این مردان جوان معبد اصلی را ندیده بودند که نشان دهنده بهترین های خدا بود وقتی که زیر بنای دومین معبد گذاشته شد این مردان جوان از شادی فریاد می‌زدند زیر بنای دومین معبد زیباترین چیزی بود که اونها در عمرشون دیده بودند اما پیرمردان معبد اصلی رو دیده بودند اونها گریه می‌کردند چون که در مقایسه با معبد اصلی معبد دوم چیزی نبود نمیدونم وقتی به آسمان برید و در مقابل تخت داوری مسیح بیستید احساسات شما چی خواهد بود وقتی عیسی مسیح به شما میگه بذارید به شما نشون بدم چه کاری میتونستید انجام بدید این چیزیه که من در شما قرار دادم عطایا و مهارتهای شما اینها بودند این کاری بود که میخواستم شما انجام بدید اگر اون رو با کاری که انجام دادید مقایسه کنید نمیدونم. اون موقع شاید یاد بگیرید که بزرگترین دشمن بهترین ها چیزی خوب هست. این تمثیل زیبا در کتاب عزرا هست. این یک اصل و الگو مربوط به کار خدا هست. شیطان سعی خواهد کرد با گفتن این ما را از انجام بهترین کارهایمان برای خدا باز داره. چیزی خوب انجام بده. اما سعی نکن که بهترین نقشه خدا رو برای زندگیت انجام بدی. الگوها و اصول زیادی در کتاب را درباره انجام کار خدا هست. اما وقتمون به پایان رسیده و در درس بعدی به اونها خواهیم پرداخت امروز میخوام جلسه رو با به چالش کشیدن شما تمام کنم. اجازه ندید چیزهای خوب مانع انجام بهترین های خدا برای شما بشه. به خدا اعتماد کنید که شما را هدایت کنه و تمامی نیازهای شما رو فراهم کنه. تا دیدار بعدی دعای من اینه که خدا به شما برکت عظیمی بده تا در ایمانتون رشد کنید. عزیزان، دشمن ما شیطان بسیار ایسر اوقات ای که ما رو از انجام دریافت بهترین های خدا باز می چیزی زیرکان است. این هفته مراقب باشید که شیطان شما رو با چیزهای خوب وسوسه نکنه تا شما رو از دریافت بهترین های خدا محروم کنه. دعای ما اینه که این درس ها به شما کمک کنه در آگاهی و شناخت بهترین های خدا و اراده عالی اون برای زندگیتون رشد کنین.